دوستان عزیز کتاب ژن خودخواه نوشته یا ریچارد داکینز رو خدمت شما تقدیم می کنیم توضیح مقدماتی برای این کتاب اغلب ما مثل اصحاب کلیسا اصولا به فرگشت یا تکامل باور نداریم هرچند علم در حد واقعیت است و در مقوله باورها نمی گنجد که به آن معتقد باشیم یا نباشیم ما فقط از واقعیت می توانیم مطلع باشیم یا نپوشیم اما در برخورد با کرونا یا کووید 19 جهش ویروس را باور داریم و جهش را فرگشت به ما آموزد پندری راه فرار بسته است این ترجمه مربوط به کتابی است که در سال 1976 یعنی سه سال قبل از بهمن 57 ما چاپ شده است ویراست دومان در سال 2006 چاپ شد و ترجمه حاضر بر مبنای آن ویراست. است. داکینز متن کتاب را بروز نکرده، بلکه پینوشتهایی به هر فصل افزوده است. مترجم فارسی کتاب نام خود را ذکر نکرده است. کاری که به هر دلیل که بوده احترام برانگیز است. معمولاً اغلب کارهای علمی را هم برای کسب نام انجام می دهند. وار زیادی میطلبت که کسی این همه زحمت را به جان بخرد برای آگاهی هم نوعانش نه برای کسب نام و آوازه در اینترنت دیدیم که ترجمه کتاب را به روی کاغذ انتشارات مازیار با ترجمه دکتر جلال سلطانی چاپ کرده است نمیدانم ترجمه موجود در اینترنت هم حاصل کار آقای دکتر سلطانی است یا خیر به هر حال ترجمه موجود در اینترنت بسیار ترجمه خوبی است. منتها متاسفانه رقم زحمات بسیار و ارزنده مترجم این کار ویرایش نشده و تا حدی خواندن و درک بعضی قسمت‌ها را دشوار می هرچند باید افزود که احتمالا ما برخی از واژه مربوط به علومی را که در قرب رشد کرده یا نداریم یا باید از فرهنگ لغت انگلیسی به عربی وام بگیریم. مانند بسیاری از اصطلاحات مرتبط با تلفن همراه و اینترنت که به جای لاتین آن عربی را به کار میبریم. با این وصف کار مترجم ستودنی است. در کتاب از نوع گونه و انتخاب بسیار سخن رفته. نو و گونه ترجمه اسپیشس است. مانند گونه یا نوع انسان، شامپانزه، موش، آهو، منظور از انتخاب انتخاب طبیعی است. در اسکاتلند روی درختانی که تنه آنها سفید بود، دو نوع بید زندگی می کردند. بید سیاه و بید سفید. پرنده روی سفیدی تنه درخت بیدهای سیاه را میدیدند و می خوردند. نسل بیدهای سفید گسترش یافت و بیدهای سیاه رو به نابودی رفتند در اوایل عصر صنعتی. که سوخت زغال سنگ باب شد دود قلیز دودکش های کارخانه ها باعث نشستن دوده روی تنه درختان شد حالا بیدهای سفید دیده و شکار پرنده ها می شدند بیدهای سفید رو به کاهش و بیدهای سیاه رو به گسترش گذاشت چنین اتفاقاتی وقتی در طبیعت رخ دهد نمونه ای از انتخاب طبیعی است پیشتر تصور می شود. هر موجود زنده ای به طور قریزی تمایل دارد نسل خود را به جا بگذارد. داکینز در ژن خودخواه خواه نظر دیگری را پیش می کشد. به این مفهوم که همتاساز ها یا ژنها تمایل به تولید همانند خودشان را دارند. همتا ها در یک اقدام شگفت آور به صورت کلونی های بزرگ، ماشین یا محمل یا وسیله هایی ساختند که این کار را برایشان تسهیل کند. آن ماشین بدن است. بدن کلی موجودات زنده از حشره و پرنده گرفته تا گیاه و انسان. جنی ادامه پیدا می کند و می تواند تولید مست کند که ماشین بهتری بسازد. خصلت خودخواهی جن باعث می شود ماشین ها با هم برای رقا مبارزه کنند پس اینکه کسی به برادر مهر میورزد، ماشینی است که به دستور ژن‌های درونش از کسی که نزدیکترین ترگیبات ژنی او را دارد حمایت می‌کند این نگاه دیگری است به رابطه هم به پدر و فرزند به مادر و فرزند برادر و خواهر این نگاه برای ما نگاه معنوسی نیست ما تعابیر خود را از این رابطه ها داریم. برای نگاه جدید باید چشمه را واقعا شست و جور دیگر باید دید. این تغییر نگاه از دیدی که با آن معتادیم به دید جدید آثار اجتماعی فراوانی دارد. یعنی همبستگی مردم، قبیله و شهر و کشور هم مستلزم تحلیلی متفاوت خواهد بود. از نظر داکینز هر موجود زنده یک بسته پر از ژن است که به فرمان آن جن عمل می کند. همین ماشینسازی سازی باعث تکامل یافتن پدیده شگفتاور پیچیده مغز و زایش شعور شده و شعور می تواند در زمینه های اعلام استقلال کند و از فرمان ژن سرپیچی کند و تمام و کمال عروسک خیم بازی جن نباشد. نمونهش خودداری از دارا شدن فرزند در همخوابگیها ها که خلاف خاصی جن است. زیرا جن هرمون های پاداش همخوابگی را فقط برای تولید مثل به وجود آورده. مطلب مهم دیگر کتاب داکینز تره نظریه میم یا مم است. به نظر داکینز اطلاعات سخت وجود ما توسط ژن ها منتقل می شود و اطلاعات نرمافزاری مغز را ام از سنت و فرهنگ و غیره معادل غیر ملموس جن یعنی میم انتقال می دهد. میم ها کوچکترین اجزاء انتقال فرهنگ و سایر آگاهی های اجتماعی هند. جالب است که ما به کسی که جن مشترک با ما دارد احساس نزدیکی میکنیم و در این حال با کسانی که با ما میم مشترک دارند نیز احساس نزدیکی داریم. یک مسیحی بیشتر به یک مسیحی حس نزدیکی دارد تا با یک مسلمان یا یک مارکسیست. مجموعه میم ها گاه به تعبیر یوبالحراری قصه می سازند و قصه ها چسب افراد جامعه است که آنها را در کنار هم جمع می کند. قصه فاشیز، بودیزم و غیره که باعث بسیج و اتحاد یک جمع بسیار بزرگ و پیوند آنها با هم می شود. مازیار اضافه بر جن خودخواه کتاب دوپامین رانیز چاپ کرده. این کتاب را دانیل لیبرمن و مایکل لانگ نوشتند و آقای دکتر محمد اسماعیل فلزی آن را ترجمه کرده است. و کتاب صوتی آن هم با اجرای بسیار عالی در دسترس است. دوپامین را جنها ساختند تا فرمان اتومبیل وجود ما را در دست گیرند و با اکسیتوسین و انروفین ما را وادار به تولید مست می کنند و ترشح این هرمون ها را ما عشق و لذت تلقی می کنیم. این هرمون ها ابزار کار جنها هستند. با وعده که آقای یووال هراری می دهد در آینده نزدیک هوش مصنوعی عهدهدار بقیه ی راه تکامل در روی زمین خواهد بود و حداقل در این کتاب یعنی چاپ 2006 داکینز به ما می میگوید با وجود هوش مصنوعی وظیفه ژن بشر چه خواهد بود مسلما ژن در سایر محملها یا ماشین هایی که ساخته از خرخاکی گرفته تا قارچ همچنان نامیرا به راه خود ادامه خواهد داد از کلیه اشتباهاتی که احتمالاً در خانش کتاب داشتم از شما پیش پوزش می دلم.